از گروه جوان و فرهنگ به نام خالق یکتایی که میر ورزیدن آموخت سلام افثانها روایت شیرین و شنیدنی و خوندنی زندگی روزمره ما هستند و در این سادگی نکات ارزشمند و حکمتهای مفید در خودشون نفته دارن امشب در برومی هزار افثان از سرزمین پهناور و زیبای ایران عزیز براتون نقل می به نام افسانه سنگ صبور برگرفت از کتاب ایران آشغانه به روایت خاطره هجازی که بسیار شنیدنی و زیباست امیدوارم ما رو تا پایان این افسانه زیبای ایرانی همراهی کنید. روزی روزگاری دختری بود به نام تارا که با پدر و مادرش زندگی میکرد پدر تارا مکتبدار بود و به بچه ها درس میداد و تارا هم توی همون مکتب پدرش درس میکند تارا صبح خیلی زود از خواب بیدار میشد کتاباش رو بر میداشت و به مکتب میرفت و اونجا رو آجارو میکرد بعد میرفت سر و حوز وزو می گرفت بعد از نماز تا بیان کتاب می خوند و درسها رو دوره می کرد این کار هر روز تارا بود تا اینکه یه روز وقتی رفت سر و حوز وزو بگیره آب حوز آروم آروم پایین رفت تارا تعجب کرد و رفت توی حوز که ببینه زیر آب سر جاشه یا نه وقتی وارد حوز شد یهو دید جنوری شبیه ماهی بالا و پایین میپره تارا آروم آروم به اون نزدیک شد خوب که نگاه کرد یه جفت دست بود تارا خم شد انگار دستها به تارا میگفتن تارا تارا بیا بیا تارا زانو زد و کنارشون نشست یادش اومد که پدر پدربزرگش وقتی زنده بود میگفت این حوز آه میکشه باور کنین راست میگم کن اما هیچکس حرف پدربزرگ تارا رو قبول نمیکرد و گاهی حتی به این حرف پدربزرگ هم میخندیدند تارا هاج و واج به دستها که توی هر انگشت اون یه انگشتر جواهر نشون بود نگاه میکرد یه لحظه خاص به اونا دست بزنه که یه ها ناپدید شدن و آب حوز شروع کرد به بالا اومدن را از آب بیرون اومد و روی پله های حیات مکتب خونه نشست و حسابی رفت توی فکر ماجرا هر روز تکرار میشد و تارا در این مورد به کسی چیزی نمی گفت بعد تصمیم گرفت دیگه برا وزو گرفتن سر حوز نره و توی خونه شون ضو بگیره. اما اولین روزی که توی خونشون وجودضوع گرفت بعدش به کوچه رفت دید که دستا کنار دیوار روی مچ ایستادن. درست مثل اینکه یه نفر منتظرشون باشه تارا با عجله به خونه برگشت رو تا توی خونه موند. پدر و مادر تارا از اینکه تارا به مکتب خونه نرفته بود متعجب شده بودند و احساس کردند دخترشون باید بیمار شده باشه. بنابراین مادر تارا به تارا گفت: تارا جان، دخترم، انگار حالت خوش نیست. میخوای حکیم خبر کنم، ها دختر؟ تارا که دیگه طاقتش از این وضعیت تاخ شده بود به تندی گفت بله مادر بله فکر میکنم یه کمی بیمارم, بیمارم. نزدیک غروب حکیم به خونهٔ اومد حکیم که مردی توانا و حاضق بود فورا فهمید که باید با تارا تنها صحبت کنه اتاق رو خلوت کرد و تارا تمام ماجرا رو برای حکیم تعریف کرد حکیم لبخندی زد و گفت <تصفيق> دختر جان تو بیمار نیستی فقط باید بری و صاحب اون دستا رو پیدا کنی بله تا زمانی که این کار رو نکنی اون دستا همه وقت و همه جا دنبال تو هست این رازیه که کلیدش توی دستای خودته بله باید از این شهر بری را با ناراحتی گفت ای حکیم، من باید کجا برم؟ حکیم گفت، وقتی اون دست ها تا اینجا اومدن، خودشون راه رو نشونت میدن. تارا سرش رو پایین انداخت و آروم گفت، اما پدر مادرم چی؟ به اونا چی بگم؟ حکیم گفت، نگران نباش، من همه چیز رو به اونا میگم. حکیم از اتاق بیرون رفت و تمام ماجرا رو برای پدر و مادر تارا تعریف کرد. پدر تارا گفت: نه، من دخترم رو تنها نمیذارم، باید همراهش برم. مادر تارا هم اضافه کرد: منم با شما میام. اینجوری هر اتفاقی بیفته، هر سه نفرمون با همیم. خلاصه، خانواده تارا آماده شدن که فردا اول وقت را یه سفر بشن صبح روز بعد قبل از طلوع آفتاب هر سه از خونه بیرون اومدن وقتی خوب از شهر دور شدن کنار نهر آبی که از نزدیک شهر گذر می نشستند نشستن مادر سفره نون رو باز کرد و هر سه با هم مشغول خوردن شدن تارا کنار نهر آب رفت و پاهاش رو توی جوی آب گذاشت که یهو چیزی به پاش خورد تارا از ترس جیه کشید پدر مادر تارا با صدای جیغ تارا به سراغش اومدن دیدن تمام سطح آب پوشیده شده از دونه های سرخ انار تارا گفت باید بدونیم که این دونه های انار کجا میرن این یه علامته فکر کنم جایی که باید بریم از همینجا شروع میشه خلاصه فوراً به دنبال دونه های انار به راه افتادن رفتند و رفتند تا جایی که نهر آب باریک و باریکتر میشد و از زیر دیوار قلعهای به داخل اون میرفت اونا پای دیوار قلعه ایستادند در قلعه چهارتاق باز بود و هیچ کس توی حیات اون نبود پدر گفت جواب ما هرچی که باشه توی این قلعه است بریم بریم تارا اولین نفری بود که وارد قلعه شد و قبل از اینکه پدر و مادر هم وارد قلعه بشن یه در قلعه با سراغ مهیبی پشت سر تارا بسته شد تارا توی قلعه موند و پدر و مادرش بیرون از قلعه پدر خواست از دیوار قلعه بالا بره ولی هرچی کرد نتونست مادر شروع کرد به گریه زاری که دخترم دختر. اون چه بلای سرش بیرد پدر اونو دلداری داد و با صدای بلند به تارا گفت تارا جان نگران نباش من و مادر تا شب نشده به شهر میریم و کمک میاریم اصلا نترس دخترم ما نجاتت میدیم پدر اینو گفت و بعد با تمام قدرت صفره نون رو به داخل قلعه پرتاب کرد اما سفره دوباره به طرف اونا برگشت پدر خم شد که گره سفره رو محکمتر کنه و دوباره اونو بندازه توی قلعه اما بخچهٔ نون بزرگتر شده بود مادر جلو اومد و گره سفره رو باز کرد و با تعجب دید که به جای نون پر از جواهر و همراه اون جواهرات هم به چشم میخوره پدر نامه را از دست مادر گرفت و اونو خوند مادر با نگرانی پرسید مرد توی اون نامه چی نوشته ها چرا نمیگی نسوه جون شدم پدر غمگین گفت صاحب قلع زن توی این نامه به رسم پادشاهان از دخترمون خواستگاری کرده مادر با تعججب گفت تا این دیگه چجور خواستگاری شاهان است اصلا صاحب غلعه یکی یکی از دخترمون خاستگاری کرده ها سر که باشه مگه دختر ما فروشیه که بر جواهر فرستده ها؟, ها پدر با ناراحتی گفت الان وقتی نرفو نیست گله تلسمه باید به خونه برگردیم و در این باره به کسی چیزی نگیم تفکل به خدا شاید یه روزی دخترمون تارا رو دیدیم به نظرم صاحب قلعه نباید آدم بدی باشه حالا بریم به اما بشنوید از حال و احوال تارا تارا وارد قلعه که شد با قدم لرزون به طرف امارت قلعه رفت اما هر قدمی که برمی داشت زمین زیر پاش سبز می شد و گل و سبز می روید. تارا اینو به فال نیک گرفت و جلوتر ترفت بله اونجا جای عجیبی بود و اتاقهای قلعه زیاد بودن و تو در تو تارا در اتاقهای غلعه رو یکی یکی باز میکرد اما به در چهلوم که رسید از حیرت سر جاش میخکوب شد در انتهای اتاق روی تختی مرسع مردی زیبا که حدوداً بیس ساله به نظر میرسید دراز کشیده بود. تارا لحظه ایستاد و بعد با احتیاط به مرد نزدیک شد و با خودش گفت خدای من نکنه من این مرد جوونم مثل من اسیر این قلعه شده باشه ها؟ تارا بالای سر مرد جوون نشست و آرون گفت پس صاحب قلعه تویی هر دو ای که چهل روز بالای سرت بشینه روزی یه دونه بادون بخوره و دعا بخونه و هر روز یه دونه سوزن از پای تو در بیاره هم سرت تو میشه آه، اما من دلم برات میسوزه. حالا اومدی تو از خواب بیدار شدی و دختر رو نپسندیدی اون وقت چی؟ منو که نمی نمیپسندی میدونم آخه من به زیبای تو نیستم سروتی هم ندارم ولی من تو رو نجات میدم خدایا به من قدرت بده این مرد جوون رو نجات بدم خدایا نظر این مرد بیشتر از این اسیر تلسم دیو سیاه بمونه خدایا امیدم به تو به من کمک کن خدایا به اون دیو سیاه هم زیبایی بده اون قدر زیبایی بده که دلش خوش بشه ای خدا آمین بعد یه مغز بادوم از ظرفی که بالای سر مرد جوان بود برداشت و خورد و یه سوزن از پای اون بیرون را هر روز بالای سر جوون می نشست و یه مغز بادو می خورد و دعا می کرد بعدم یه سوزن از پای جوون بیرون میکشید تا اینکه روز چهلم فرار رسید دل ها را خیلی شور می زد. خواست به سراغ جوون بره که یه دفعه صدایی رو شنید و فکر کرد شاید پدر و مادرش اومدن با خوشحالی از پلکان کنار دیوار خودش رو بالا کشید و رسون به پشت بام قلعه دید کاروانی داره از کنار قلعه گذر میکنه وقتی کاروان نزدیکتر اومد تارا در میون کنیزها دختر جوونی رو دید که میافت و بلند میشه و چون نمیتونست تون راه بره از صاحبش کتک می‌خورد. دل تارا به رحم اومد و با خودش گفت خوبه برم و این کنیزو بخرم و خلاصش کنم اینجوری خودم هم از تنهایی گرمیان تارا از بالای پشت بوم مرد کارواندار رو صدا زد و کنیز رو درخواست کرد و گفت که کنیز رو با تنابی بالا بفرسته کارواندار گفت مگه این قلعه در نداره؟ از حرف کارواندار تارا فکر کرد شاید تا حالا در قلعه باز شده باشه و وقتی رفت دید که بله در قلعه باز بازه اولین فکری که به ذهنش اومد این بود که خب حالا میتونم برگردم پیش پدر و مادرم ولی ولی این جوون اسیل رو چکار کنم دلم نمیاد اونو تنا بذرم گناه داره اون باید نجات پیدا کنه تارا فوراً به کنیز گفت که وارد قلعه بشه و با ورودش به قلعه به اون آب و غذا داد و زخم دست و پاش رو شست و بعد ازش پرسید اسم چیه؟ کنیز جواب داد تلا اسمم تلاست تارا گفت تلا خوهر جان تو همینجا بمون تا من برگردم میخوام یه آبی به سر و صورتم بزنم زود میام کنیز گفت از حالا دیگه شما بانوی من هستید هر چی شما امر بفرمایید تارا رفت و کنیزک هم شروع کرد به گشت زدن توی خونه از این اتاق به اون اتاق تا اینکه رسید به اتاق چهلم، یعنی همون که مرد جوان خوابیده بود کنیزک با دیدن سوزن توی پای جوان دلش براش سوخت و فورا اونو از پای جوان بیرون کشید جوان ای کرد و چشاشو باز کرد و با دیدن کنیزک گفت تو تو من از خواب چهل سال بیدار کردی من نمیدونم چطوری از تو تشکر کنم تو برای نجات من چهل روز زحمت کشیدی چهل روز در این موقع تارا وارد اتاق شد و دید که بله کنیزک آخرین سوزن رو از پای جوون بیرون کشیده کنیزک هم تا تارا رو دید فورا به جوون گفت. این کنیز منه تازه خریدمش اونقدر سر و صورتش کثیف بود که اول فرستادمش بره یه آبی به سر و صورتش بزنه بعد بیاد ترا با شنیدن این حرف کنیز ناراحت شد و شروع کرد به گریه کردن مرد جوان که گریه ترا رو دید با مهرمونی گفت قصه نخور چون من آزاد شدم تو رو هم آزاد میکنم که به شهر و دیار خودت برگردی و بانوی منو دعا کنی که اون منو نجات داد و منم تو رو نجات دادم حالا برو برو تو آزادی کنیزک <تصفح> که حالا بانوی این شده بود با عصبانیت گفت مگه نشیدی سرورم چی گفت ها زود از اینجا برو تو رو اومد که حقیقت رو برای مرد جوان بگی که حس کرد کسی در گوشش گفت صبور باش بمون فقط باید یکمی کمی تعمل کنی تارا بعد از شنیدن این صدا عشقاشو پا کرد و به مرد جوان ملتمسانه گفت ای مرد جوان پیداست که جوان مردی به من رحم کن و منو از اینجا بیرون نکن من جایی رو ندارم برم جوان گفت باشه باشه بمون حالا ما رو تنها بذار کنیز یا همون تلا هم گفت حالا برو و برای ما غذا تهیه کن ما هر دوتا خیلی گرست نیم تارا نگاهی به جوان انداخت و پرسید ای مرد جوون. فقط به من بگین به چه کسی خدمت میکنم اسم شما چیه مرد جوان گفت اسم من شاهزاده یوسفه حالا برو یه غذای تهیه کن که بانوی من سخت گرسنه است تارا با دلی گرفت از اتاق بیرون اومد و رفت توی مطبخ و شروع کرد به گریه کردن در این موقع کسی اونو صدا زد تارا تارا تارا تارا سرش رو برگردوند و مقابل چشاش موجود بلند قامتی رو دید که سرش به سر خورده بود و داشت نگاش میکرد تارا با ترس و لرس گفت تو کی هستی؟ موجود بلند امد گفت من دیو سیاهم ترا با تحجب گفت ولی ولی تو اصلا مثل دیوا نیستی تو تو خیلی زیبایی مثل شاهزاده یوسف دیو خندیده گفت من با دعاهای تو زیبا شدم تو دختر خوشغلبی هستی تو منو از دیو بودن نجات دادی برا همین هم میخوام تو رو به اونچه حقه برسونم م. تا چند روز دیگه شاهزاده یوسف از این کنیزک خسته میشه البته شاهزاده چون خودش رو مدیونون میدونه راهاش نمیکنه. چند روز دیگه هم به کنیزک میگه که باید به سفر بره اون وقت از تو میپرسه که سوقاتی چی میخوای تو هم باید بگی یه سنگ صبور تارا گفت سنگ صبور سنگ صبور دیگه چه دیو گفت بعدن خودت میفهمی تو فقط از شاهزاده سوغات یک سنگ صبور بخوا وقتی سنگ رو گرفتی میری بیرون اعلی سنگ رو میذاری رو به و تمام ماجرای زندگی خودت رو مو به مو برای اون تعریف میکنی بعد هم از سنگ صبور میپرسی ای سنگ صبور حالا که داستان زندگی منو شنیدی من بترکم یا تو دیف اینو گفت و از اونجا شد روز بعد شاهزاده یوسف بار سفر رو بست و به افتاد سفرش یک سال تمام طول کشید به بازار شهر رفت و هر اونجوری که بانوی قلعه یا همون کنیزک خواسته بود براش تهیه کرد و به راه افتاد نیمی از راه رو که رفت یادش اومد که چیزی رو که تا راه خواسته بود براش نگرفته دلش سوخت به نور این برگشت و رفت سراغ دکون سنگ تراشی سنگ تراش با تعجب پرسید ای جوون این سنگ صبور رو برای چه کسی میخوای جوون لبخندی زد و گفت <تصفيق> برای کنیزک قلعه مون چطور مگه سنگ تراش سری تکون داد و گفت این سنگ رو برای هر کی میبری، وقتی بهش دادی خودت پشت در بایست و گوش بده این سنگ مال اوناییه که راضی دارن و میدونن اگه بگن کسی حرفشون رو باور نمیکنه کسی که این سنگ رو از تو خواسته رازی در دل داره شاید رازش به تو هم مربوط بشه تو باید به هوش باشی که وقتی حرف اون کنیزک که این سنگ رو براش میبری تموم شد پیش دستی کنی جوون با تعجو پرسید یعنی چی سنگ تراش گفت اون کنیزک میگه ای سنگ صبور حالا که داستان من رو شنیدی من بترکم یا تو تو باید قبل از اینکه اون اینو بگه تو بگی ای سنگ صبور تو بترک اگه این کار رو نکنی کسی که با سنگ در دل میکنه میترک و میمیره شاهزاده سنگ سبور رو گرفت و به طرف شهر و دیارش افتاد شاهزاد یوسف به خونش رسید صوقاتی بانوی قلعه و تارا رو داد و خودش رو به خواب زد نیمه های شب تارا سنگ رو برداشت و رفت بیرون قلعه جوون هم پشت سرش آروم و آهسته رفت تارا سنگ رو گذاشت جروش آهی کشید و شروع کرد به درد دل کردن اون تمام ماجرا رو یک به یک برای سنگ صبور تعریف کرد آخر قصه که شد تارا گفت ای سنگ صبور قصهٔ منو شنیدی حالا من بترکم یا تو شاهزاده یوسف از مخفیگاه بیرون اومد و بهتوندی گفت ای سنگ صبور تو بترک هنوز حرف شاهزاده تموم نشده بود که سنگ ترکید و هزار تکه شد شاهزاده یوسف جلو رفت و در برابر تارا زانو زد و از اون اوز خواهی کرد بعد با خوشحالی گفت حالا که حقیقت روشن شده باید جشن بگیریم اما قبل از اون باید سزای اون دروگو رو کف دستش بذارم اون کنیزک دروگو رو باید <تصفيق> تارا کنام شاهزاده رو قد کرد و گفت ای شاهزاده اون کنیزک رو به عنوان هدیه عروسی به من ببخش من فکر بهتری دارم بعد کنیزک یا همون تلار و صدا زد طلا که متوجه لو رفتن ماجرا شده بود سخت ترسید و به گوشه‌ای پناه برده بود تارا به طلا گفت میتونی چند سکه تلا بگیری و برای همیشه از اینجا بری البته اگه بخوای بمونی باید برای ما کار کنی و اگه دوباره خیانت کنی اون وقت اجازه میدم شاهزاده تو رو به سزای اعمالت برسونه طلا یا همون کنیزک زانو زد و روزخایی کرد شاهزاد یوسف که درایت تارا رو دید با خوشحالی دستور داد صد غلام و همراه بهترین هدایا به سراغ پدر و مادر تارا برن و اونا رو به قلعه بیارن چند روز بعد تارا به عقد شاهزاده یوسف در اومد و های سال با خوبی و خوشی زندگی کرد افسانه زیبای سنگ سبور را از گنجینه ارزشمند ادبیات شفاهی کشورمون شنیدید. این افسانه برگرفت از کتاب ایران عاشقانه به روایت خاطره اجازی بود که امیدواریم از شنیدن این افسانه زیبای ایرانی لذت بارده باشید.